اعوذ بالله السميع العلیم من الشيطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا و آله الطاهرین خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم صبح بخیر عرض می شاء انشاءالله که به لطف الهی از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار هستید و انشاءالله که با اینایت باری تعالی از هر گونه گزند و هم به دور مانید ولی بحث ما در خدمت شما بودیم با بحر مهم رجز این بحر بحر مهمی و بسیار کاربرد در زبان عربی دارد شکل‌های تام و مجزوع و مشتور و منهوک چهار شکل رو در اون داریم این بحر رجز که نفتاه اون رو خدمت شما گفتیم فی اب هره لعر جازه بحرانی سهولو مصطفعلو, مصطفعلو, مصطفعلو, مصطفعلو که از شیشتا و تشکیل شد، سه تا در صدر و سه تا در عجز مصطفی مستفعلن مصطفی آلن، مصطفی مستفعلن مصطفی آلن، فی ابهر العرجاز بحران یا سوهو در بحرهای رجزها است که آسان جلوه می کند که مصطف علون مصطف علون مصطف علون،, علون،, علون،, علون،, علون اگر یادتون باشه که انشاءالله هست زهاف خبر بهش داخل می و مستفعلن تبدیل به مفاعلون می و این هم در و هم در عروض و هم در ضرب دیده میشه. بعد زههاافت تعی بهش داخل میشد، اون مخبونه می شد این مطبیه میشه. و اون دومین حرف ساکن هست می شود. این چهارمین حرف ساکن هست میشه و مستفان تبدیل میشه به مفتعلان ولی این بیشتر در، حش با عروض دیده میشه در ضربش نادره مفتعل بعد زهاف سومی داشتیم که متشکل از این دو تا زهاف بود که به زهاف خبل معروف بود مخبوله میشد و هم دومین و هم چهارمین حرف ساکن حذف میشد و مصطف تبدیل می شد به متعلون متعلون گفتیم این نوعزه ها و در شعر ابن مالک ما در ارجوزه خودش که در بحر رجز نحو رو گفته بسیار دیده شده اونم گفتیم بسیار دیده شده نه اینکه در هزار بیت او مثلا در هشت بیتش دیده شده نه یعنی در حد یه بیت و دو بیت و سه بیت نیست در حدی که به چشم میاد دیده شد بعد گفتیم یک علت همینجا داریم علت قطع و اون هم هزف ساکنه وطد مجموع و اسکان ما قبلش گفتیم یعنی وطد مجموع تبدیل بشه به سبب خفیف مستفعلن الان اون الان که آخر هستش تبدیل بشه به سبب خفیف یعنی خط تیره که گفتیم مستفعلن الان تبدیل میشه به مفعولان و گفتیم گاهی اوقات همین مفعولان بهش ذحاف خرم داخل میشه و دومین حرف ساکنش مف قوفا میافته میشه فعوله این ذهاب اینجا لازم ال است نیست زحافش قابل ادامه نیست اما اون علت بعد چرا چون علت و علت هم میدونید که در ضرب و عروس پیدا میشه بعد اومدیم انواع بحر گفتیم این بحر تام داره مجزوء داره که یعنی یه جزء از این و یه جزء از اون بر افتاده شده مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعل مشتور داره که از سه تا مستفعلن تشکیل شده و هر سه تا مستفعلن یه بیت میشه منهوک داره که از دو تا مستفعلن تشکیل شده و هر دوتا مصطف یک بیت دیده میشه در این مشتور و منحوکش دیگه ما ضرب و عروض دوتا نداریم یه دونه دیگه اون یه دونه هم زرب هم عروضه چون به ما دو پاره ندارد سه تا مصطف شده یک بیت دوتا مصطف الان شده یک بیت در مشتور و منحوک بعد اومدیم وارد انواع شدیم رجز تام خوندیم که گفتیم دو نوعه یک رجز تام صحیحه یعنی چیز قابل ادامه ای توش نیست عروضش مستفعلن الان ضربشم مصطف این ع... رجز تام صحیح بود عروض مستفعلن الان ضربم مصطفح. بعد رجز تام مقتوع رو داشتیم که این رجز تام مقتوع عروضش مستفعلن اما زربش مقتوع از مفعولن ضربش مقطوع است یعنی مفعولنه یعنی در واقع میشه مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن خب اینجا اگر ما بیت نسر را داشته باشیم عروض تابع زر خواهد شد اینم و بود که داشتیم بعد اومدیم توی مجزوع مجزوعش از دوتا مصطف علون در صد دوتا مصطف علون در عجز تشکیل شد درست شد این رجز مجزوع که تشکیل میشد از تفعیلهٔ الان که چهار بار تکرار میشد عروزش مستفعلن ضربشن مستفعلن و این خیلی زیاد در شعر عربی هست چون هم وزن کوتاه شده هم مستفعلان وزن راحتی است برای گفتن از مولانا رومی جلال الدین رومی داشتیم که جا عربی اول بتر جا عربی اول بتر زال الشتاء اول مادر منفذ درب نه اندهو کل الخطایا تختفر که ما بسیار زیبا این رو برای شما بیان کردیم و اشکالاتی هم که در تختیش وجود داشت برای شما گفت. بعد اومدیم سر رجاز مشتور اف و حوه یتعلف من تفعیلت مصطفیلون تتکرلن و سلا از تفعیله مصطفیلون که سه بار تکرار شده این تشکیل شده بعد گفت این از همه انواع رجز شدورش بیشتره و هوا اکثر و انواع رجز شیوعه چون خیلی راحتتر. در واقع تا میت گفته میشه اینها یا به این شکلی که الان شما دارید میبینید این شکلی نوشته میشه که یا به شکل پلهی زیره هم نوشته میشه وحیعت و هیه تو تفعیلتو الثالثت اون تفعیله سومش هم عروز است هم ضرب است یعنی الان وقتی که شما ان سمت ثمتن امی هیدره می هیدره که شما دارید میبینید این هم عروزه هم ضربه این ان سمت ثمتن امی هیدره این یه بیته کلیس قابات انقلیزه و قصره یک بیته اکیلو کن به سیفه کهیلستن دره یه بیته سه بیت، من همینطور سه بیته دیگه و این در واقع است که امیر المامنین بیان فرموده و یه ایلت و سالستتو و یه اتیالا انباه ناعش المشتور و صحیح مشتور صحیحش اونه خوبه ماکان تفعیل تو زرب هی کم و تفعیل هم هست الا مصطف علان نه با قول امیر المومنی علل لذی امی هیدره نیمی هیدره, هیدره. مصطف علان درست شد زل قصره مفتعلون. که باز همون بقید زهاف داخل شده دیگه یعنی باز هم لسندره مصطفه الان ما واقع میکنیم میبینیم که تو هر بیت ما مستفعلن الان داریم در عروض و زردش الاللزی سمت نه امی حیدره کلیس قاباتن قلیزل قصره اکیل کن به سیف به سعیف یعنی با همین شمشیر سیف الفلام داره یعنی شمشیر خودم با این شمشیر خودم شما رو تکه تکه میکنم قسمت میکنم کیل از سندره به طور مصابی مثل اندازه کردن این تراسوی رومی سندره یعنی مثل همچین قشنگ شما رو تیکه می میکنم اندازه و درست اکیلو کن به صیفه کیل از گف الملاحظه هنا ان المشطوره یکتب على هذه الصوره مشتور اینطوری نوشته میشه و هویتعلف من ثلاث ابيات سه تا بیت اینطوری میاد و سه تا بیت دیگه برشو. و ان ذهاف الخبن و تائی فدخل فد على بعض تفعیلات ذهاف الخبن ذهاف تائی داخل شده بر تفعیلاتش شکالی هم نداره قابل ادامه هم این مشتور صحیح بود یعنی چیز قابل ادامه نداشت اما مشتور مقتوع مشتور مقتوع مشتور یعنی سه تا مصطفید مقتوع یعنی قطع به داخل شده علت هم این بود که الان تبدیل میشد به مفعولات خواهد بخونیم میفرماید که علمشتور و مقتوع و هو هوه ماکانت تفعیلت و زربهی که همون تفعیل عروزم هم هست چون زرب عروض اینکه و هوه ماکانت تفعیلت و زربهی مقتوعه تفعیل زربش مقتوعه هست مفعولان و قدیت, خ... قدیت خلوها زهاف و خبر گاه یوقاتم زهاف خبرش داخل میشه میشه فعولان و یوقعی روهایلا فعولان که این زهاف خبنش گفتیم لازم نیست اتباه بشه زهافه برای همین میگه قدیت خلوها گاهی داخل میشه فعولان نه قول شایر. نگاه کنید پایین یه هاشیهی داره ها نوع من الرجز این نوع از رجز مشتوره و این و به صورت شطرین اگرچه الان شما اینطور که نگاه میکنید احساس میکنه یه دو بیتیه یعنی من یک و زابت تنفه یه مصرا مغیزون مشدی یه مصرا اینطور نیست بلکه این چهار بیته به این شکل نوشته شده و این کتبه به صورت شطرین و از زالکه گرجه و وجود حرف روی مبهد و این که یعنی چهار بیته برمیگرده به اینکه حرف روی واحدی داره درست شو؟ یعنی شما نگاه میکنید اینطوری میبینیدش فکر میکنید که این به خاطر اینه که حرف روی واحدش آدم احساس میکنه که به این شکل در صورت که این چهار بیته چهار بیته و ما اگر قرار بود که این به شکلی باشه که بخواد دوتا دوتا بشه دو بیت یعنی باید به شکل به قول خودمون مجزوع در میامد، مجزوع در میامد چون مجزوع بود که مصطفیلون مصطفیلون مصطفیلون مجزوع یه نوعش بود که صحیح بود در می آمد مصطف علان مصطف علان بعد مجزوع مشتور بعد رجز مجزوع داشتیم که این رجز مجذوع در واقع مصطف علان بود ولی اینجا شما مصطف مستفعلون میبینید درست شد اما اون شکلی که شما دارید از این مشتور مقتوع میبینید اون تیکه مفعولانشه گوش کنید یعنی شما توی مجزو چیز ببخشید توی مشتور مشتور شما نگاه کنید که من براتون توضیح دادم مشتور دو جور بود خب یکی رجزه الان نگاه کنید گوش بذارید برگردیم به اصل داستان که متوجه بشید که این چه فرقی داره اگر این الان بخواد یه دو بیتی باشه یه دو بیتی بیت اولش من یک و زابت انفه ها زابتی مغیزون مشتی درست شد؟ این یه بیت باشه این در واقع یه دونه از نوع تام میشه دیگه یه بیت تام تو بیت تام بیت تام یعنی مشتوره تو بیت تام ما یه دونه صحیح داشتیم که خب مصطف علون مصطف بود مصطف علون, علون این اونطور نیست یه دونم مقتوع داشتیم تو مقتوعم عروضش مصطفی الان بود ضربش ضربش مفعولان بود این الان هم اگر بخواد اونطور حساب کنید هم توی مصره اولش مفعولان داریم هم مصره دومش پس بنابراین این این از اون قسم بگید نیست یعنی الان این دو بیتی رو نگاه کنید من یک زابط تن طها زابطی مغیظ مسیف مشدتی اگر ما بخوایم دو بیتی حساب کنیم فرقش با اون رجز تام مقتو فرقش اینه اونجا فقط در آخر بیت مفعولن میاد مشد مستف الان مستف الان الان مستف الان مستف الان مفعولن اینجا هم در آخر مصرای اول هم مصرای دومه پس این مثل اون نیست این تام نیست دو بیتی نیست این چهار بیته حالا به این شکل نوشته شده گاهی اوقات هم به این شکل نوشته نمیشه پله ای نوشته میشه زیره هم نوشته میشه اونجا دیدی توی قبلی س بیت بیت بود ها س بیت بود رجز مشتور س بیت بود رجز مشتور, مشتور صحیح سه بیت سه بیت بود رجز مشتور مکتوب بیت چار بیت هر بیتش مینی مصطفی آلن مفعول آلن مفولان مصطفی آلن چهار بیت دیگر اما رجز مشتور سهی سه بیت مصطف علون مصطف علون مصطف علون مصطف پس جمع کنم مطرح خب مشطور صحیح ستابت ستابت میاد آره، حالا یا به این شکلی که اناللزیзه همتنی به این شکل نوشته میشه یا پلهی زیره هم نوشته میشه خب این ستا مصطف علون هست هر ستا مصطف علون میشه یه بید مصطفى علو مصطفى علو مصطفى علو یه بیت مصطفى علو مصطفى علو مصطفى علو یه بیت دیگه مصطفى علو مصطفى علو مصطفى علو یه بیت دیگه اینها حرف رویشون هم واحده حی دره بسره سندره این ستا این تموم میشه سه دیگه میاد درستو حرف روی واحد تکرار میشه این مال اینه بعد میایید توی مشتور مقتول تو مشتور مقصود گاه اوقات اینطوری می ولی شما نباید گول بخورید که فکر کنید این یه دو بیتیه چون اگر این دو بیتی بود باید بیت اولش بیت اولش تو صدرش مفعولان نمیآمد توی اون تیکه فحازا بدتی اونجا نباید مفعولان میآمد بلکه اونجا باید مستفعلان بیاد مفعولان بالا آخره تو مقتوعی که به شکل تام باشه پس اینکه توی هر چهار مصرا یعنی هر چهار تیکه مفعولند داریم پس این چهار تا بیده این چهار تا بیت با یک حرف روی که اینجا الان تایه درست میشه چهار تا بیت، بعد دوباره چهار تا بیده دیگه با حرف روی واحد چهار تا بیده دیگه با حرف روی واهد. درست شد الان من یک عذابتم مصطف الان مصطف الان مفعولم یه بیت مقیزون مسیفون مشتی مستفعل مصطف مصطفحالون مفعولون یه بیت دیگه اغستهون من نعجاتن ستی مستفعل مصطف مصطفحالون مفعولون یه بیت دیگه سود نعاجن که نهاجت دشتی مستفعل مصطف مصطفحالون مفعولون یه بیت دیگه چهار بیت حالا گاه یوغاد اینا رو به این شکل این شکلی میروسن پایین گفت هازن نه من الرجزه مشتور این نوع از رجز مشتوره یعنی هر ستا مصطف الان یه بیته و این کته و به صورت شطرین اگرچه شما دارید به شکل دوتا مصره می میبینید یعنی یه دو بیتی میبینید یه مصره و یه مصره و یه مصره و یه مصره این نوشته شده تو کتاب ها میگم این چطور شد که این هر ستا مصطف الانش یه بیته میگه وضعه که یه وجود حرف روی م نگاه میکنم این چهارتاش یه حرف روی واحد داره تا بعد دوباره چهارتای دیگه چهارتای دیگه اگر داشته باشه که معمولا اینها این, این تا حرف رویی که میامده دوباره همین تکرار میشود مثل همین بیتی که الان دو چهارتا بیتی که با هم میخونی المشتور المقتوع و خوبا ماکان تفعیلت و زر بهی که همون تفعیل عروضش هم هست مقتوعه مفعوله و قدیت قول و ها زهاف و و یغیر و فعولان به فعول درست شد؟ و این فعول شدنش دیگه لازم نیست تبعیت بشه میتونه مفعولان باشه میتونه فعولان بشه. نه با قول شاعر الان این شاعر رو نگاه میکنید میبینید که رجز میخونده برای یک زیراندازی که درست که تو سوخ و یک بازاری بوده که در جاهلیت بنا می شده چهار ماه در سال این بازار بوده این بازار در چهار ماه سال که دایر بوده افراد می آمدند هر چی که داشتن رو مثل نمایشگاه بوده عرضه می کردن بعضی می آمدن شمشیری داشتن زیبا بوده سیغل شده بوده زیور شده بوده میعورده اونو بعضی ها اسب خوبی داشتن بعضی ها مثل این زیرانداز خوبی داشتن بعضی شعر خوب میبافتن شعرشون رو میامدن عرضه میکردن یه نمایشگاه بوده این نمایشگاهی که شما میبینید اونجا بوده این شاعر ما آمده این زیرانداز خودش رو داشته تبلیغ میکرده این زیرانداز خودش رو داشته در اونجا تبلیغ میکرده خب این زیرانداز خودش رو داشته اونجا تبلیغ میکرده و آمده از اون رو تعریف میکرده این زیرانداز خودش رو اونم به شکل رجز گفته به سرعت این شهر رو سروده و یه چهار بیتی در مورد زیرانداز خودش بیان کرده میگه من یکو هر کسی که باشد یکون بوده دیگه میزون شده نونش به تخفیف افتاده فیر شرد. من یک زابطتن. زت بدت یعنی زیرانداز. هر کسی صاحب زیراندازی است، باش مشجونش. فهازا بطی. طازه اسم اشاره آورده برای خاطر اینکه تعظیمش کنه. ها؟ جای او اشاره برای تعظیم میورد. مثل که میگه من کن تو مولا فحازا علی یون مولا یه یعنی این نشونش باشه. می میگه هر کسی که زیراندازی داره نوش جانش هر که زیراندازی داره مال خودش خدا خیرش بده فحازا بتی اینم زیرانداز ماست ما اصلا به اون توجه نداریم میگه زیراندازدارها نوش جونشون، این زیرانداز ماست بمینی چی داریم و حازا بدتی حازا مفتداست بدتی خبر این جزای شرط مغیزان مصیف مشتی میگه چرا میگیم این مال ماست و درجه یکه هر هرچی داره مال خودش ما اصلا بهش نگاه هم نمیکنیم چون خودمون اینا داریم چون این زیرانداز ما مغیز و مسیف و مشتیه یعنی این زیرانداز ما هم برای گرما به درد میخوره هم برای سرما به درد میخوره هم بهاری مغیض و مسیف و مشتی یعنی این در واقع بگونه است که مغیزون مسیفون مشتی یعنی هر سه فصل رو داره یعنی برای گرماب و و اینها مناسبه یعنی خوبه مغیزون مسیفون مشتی این تا خبر مختلفه مست زیرا اون برای هر فصل یعنی گرما و سرما و اعتدال هوای معتده مناسب. این ستا خبر محتده فحصفه پس بنابراین تو بیت اول چی با که هر کسی زیراندازی داره مال خودش مهم نیست برای ما چرا چون این چیزی که شما دارید میبینین این زیر انداز ماست ما اینو داریم هر که هر چی داره داشته باشه این مال ماست چرا گفتیم این مال ماست باید این گابه ایچی چون این هم به قول خودمون تابستانی هم زمستانی هم بهاری اعتدالی همه جورش هست اغز توهو نعجاتن توهو من این رو گرفتم از نعجه ها از میش های ششگانه یعنی این رو پشمش رو ما از 6 تا نعجه به دست آوردیم گوش میکنید یا نه چرا میگیم این مثلا خیلی خوبه و با با قول خودمون به کار ما میاد چون ما از 6 تا حیوان این رو استفاده کردیم پشمش را از شیشتا حیوان گرفته ای. چون میگن اگر یه دونه باشه طبیعت یه دونه رو داره دیگه ولی وقتی که از شیشتا گرفته بشه طبیعت هر شیشتا رو داره نزا به درد همه میخوره داشو اخذ توهو نهوه میخوره به این بد این زیرانداز رو من گرفتم از میشهای ششگانه من نعجاتن ستن صفت نعجات سودن میشهای ششگانه سیاه سودن نعاجن میشهایی که که نعاج دشت میکنه آج نعاج سبت نعاجن قبله. میشهای شیگانه ای که مثل نجه و مثل میش‌های های دشتند، مثل حیوانات وحشی هستند، یعنی درسته که اهلیند بزرگ شدند و ما اینها نگه داشتیم می در طبیعت باز بودند و در طبیعت باز اینها، چرخیدند و خسلت حیوانات اهلی و وحشی رو با هم دارد پس گفت چی؟ گفتش که هر کسی هر زیراندازی داره مهم نیست مال خودش من یکو یکوزابتن یک فعل شرطه فهازابتی یعنی فهوبه اینم زیر ماست ما این رو داریم هر که هرچی داره داشته باشه این مال ماست چشماش به هیچ کسی دیگه ای هم نداریم چرا؟ چون زیرانداز ما چهار فصله برای همه فصوله همه کار است. چطور شده شده همه کاره؟ میگه چون ما این رو از حیوانات متعدد گرفته ایم درست شد؟ اونم حیوانات اهلی که مثل حیوانات وحشی آم بسیار بسیار آزاد بودند و از طبیعت استفاده کرد. سودن سود جمع اسوده که اینجا جمع سودا میشه چون نعجه مؤنثه هم اسود هم سودا هر دو جمعشون میشه سود نعاج جمع مثل نعجات جمع نعج. جمع مثل نعاجاتی که جمع نکسره نعاج یکی جمع صحیح مثل نعاجات که نعاج دشتی صفت نعاج قبل من یک و زا حالا دیگه شعر رو فهمیدیم این 4 بیته بعد 4 بیته دیگه میاد اینطور حالا گای و اینا رو اینطوری رو, رو رو هم می نویسن که این رو, رو رو هم نوشته شدن نباید شما رو گول بزنه به اینکه این یه دو بیتیه چون اگه دو بیتی باشه باید از جنس تام باشه چون تام مستفعلن ورستو مستفعلن و اگه تام باشه ما تام دو نو داشتیم یکی تام صحیح داشتیم که آخره هر مصرع مستفعلن بود که این نیست یکی تام مقتو داشتیم که تام مقتو هم 6 تا مستفعلن بود سه تا این ورستو اولی مستفعلن بود ستای دومی آخریش مفعولن بود و این ستای اولش هم مفعولان داره پس بنابراین این از اون جنس تام به مقتوع هم نیست که دو بیتی دو بیتی داشته باشیم آه. بلکه این چهار بیته آه. ما از اون مفعولان میفهمیم که بیته و ما چهار تا مفعولان اینجا داریم این به این شد من یک زابت تنفه ها زابتی مغیزان مشتی عغذ سهوم نعجات ستی سودالناجن که یعنی شما نمی‌تونید تصور بکنید اون شخصی که این زیراندازو داشته معرفی می‌کرده این رو به شکل رجس تون می‌خوندتون سوق و کاوس من یکو زابتن باو زابت دینتون می‌خونه و داشته تبلیغ می‌کرده اون زیرانداز خودش من یکو زا مفت الان م از بعد بعدتن س مستف الان سالم است. زابدی زا بدی مفعول م است. این ال هم ضر به هم ع این یه. مقعی مقعی یک یه زن الان است. مصی مفاه مخبونه است باشو. مو شدی اینجا دبین شد فعولا مقتوعه است مقتوعهش لازمه مقتوعهش لازمه چون این داشته تو مشتور مقتوع شعر میگفته داشته اما مخمونش لازم نیست چون الان تو بیت بعدی میبینیم که اون مخمونش نیمده مو خز توهو مفاعلٌ معلوم است من نأجا مفعالٌ مطوی است اون مخبونه این مطلع تن ستتی نأجا تن تن ستتی است الان ببینید این دیگه اون مخبونه را همراه خودش نداره چون لازم نبود. سودن سودن نه آ مصطف علون سالم است جن که نه آ مفتعلون مطلیه است جدشتی جدشتی مفعولن است چهار بیت شد حالا با یogadina رو به این شکل رو روی هم می و این نباید ما رو گول بزنه به اینکه ما احساس کنیم که این رجز تامه آه؟ نه این رجز مشتوره تام نیست به دلیل اینکه اگه تام بود حتما مصرع اولش مستفعلن داشت در سه ومینش مصطف علون مصطف علون مصطف علون اینجا شد نه مصطف علون مصطف علون شد این که مفعولان آمده نشون میده که این هر سه مصطف علون یک بیته. حالا گایوغات به این شکل رو بره هم نشه گایوغات هم پلهی نوشته میشه که راحت تر دیده تمام شد میگه الملاحظ و فیهاز هلعبیات اونی که شما ملاحظه میکنید در این عبیات الاربعت الملاحظ و فیهازه لعبیات انها جاعت مقتوعتن توی این چارتو بیت مقتوه اومده یعنی سومیش بومیش مفعولانه بقید دخل علا تفعیلاتها زهاف الخبن بدتایی و به تفعیلاتش زهاف خبنو تیم داخل شده و لازمم نیست این زحاف و لازم اتباه هم است. پس بنابراین ما این مبحث رو به این شکل دیدیم و خیلی هم سخت نبود چون فهمیدیش نگاه کنید اینجا یک مطلبی رو داره بیان میکنه که در واقع جمع نسبت به این چون رجز در واقع اینو بلبداه هم میگفتند مثل اینکه که توی سوق و کاز مطلبشون مطلبشو میگفته یا تو میدان جنگ در مقابل مبارز دیگری این سروده میشده بلبداه مثل انال لذی سمتن امیهی دره کلیس قابات غلیز القصره اکیلو کن به سیف کهی رجز امیر بود میگه ما توی این دقیق کنید میگه ما توی رجزها چون گاهی اوقات هم بلنده گاهی اوقات میبینیم که اون کسی که رجز میگه یعنی راجز که بهش میگن راجز رجز گفت اون گاهی اوقات مخلوط میکنه مخلوط میکنه یعنی ما توی رجز تام چندتا داشتیم رجز تام چند نوع بود بیایید نگاه کنید رجز تام دو نو بود یه رجز تام صحیح داشتیم یه رجز تام مقطوع داشتیم رجز تام صحیح رجز تام مختوب رجز تام صحیح کدوم بود؟ این بود که شش تا مستف الان بود سه تا این و تو مستف ال مستف ال مستف ال مستف الان مستف الان مستف این اجام به صیم مقتووش کدوم بود اون بود که شش تا تفیله داشت صففا اول مستف الان بود سه تا دوم سومیش مفولون بود یعنی اینطوری بود مست الان مست ال مستف ال مستف ال مستف الان مفولون این مقوب بود پس رجز تام به سهی این بود مصطف علون مصطف علون مصطف علون رجز تام به مقتو این بود مصطف علون مصطف علون مصطف مفعول گاهی اوقات این رجزگوها تو یه دونه ارجوزه یعنی یه رجزنامه ای که سرودند توش قاطی استفاده میکنن نگاه میکنی میبینی یه بیتش بگید رجز تام صحیحه یه بیت دیگهش رجز تام مختوبه میگه اینم دیده میشه رجز دیگه رجز میکنه میاد این رجز به این شکل مستفعلن مستفعلن مصطف علون مستفعلن علون،, علون،, علون،, علون،, علون تام سرود صحیح دوباره مصطف علون مصطف علون مصطف علون مصطف علون مصطف سرود میگه گاهی اوقات نوع علف و نوع ب رو میبینیم با هم قاطی کردن یه بیت از این یه بیت از اون استفاده کرده هرجور که دم به دستش آمده تونسته بسرایه درست شد نگاه کنیم خیلی مهم جدید رو به ذکر اونی که شایسته است ما برای شما ذکر کنیم در اینجا اینه ان قصا قَصَائِدَ کسیرتن ما قصاید زیادی داریم فی بحر رجز در بحر رجز خب باشه ما قصاید زیاد در بحر الرجز. و شعرا لم یک تقییدو به ضرب واحد فی و شعرها مقید نشدن به یک ضرب واحد درون یعنی یه نوع واحدی یعنی بیاد رجز تام صحیح بگه خب رجز تام صحیح گفته تا اول تا آخر بله ما تو رجز تام صحیح اگه یاتون باشه از ابن از آقای متنبی خوندیم رجز تام صحیح رو و شامخه من الجبال اقودی فردن که و البئیر العسیدی زرناه للعمر الذی لم یعهدی لساید و تنزه و و تمردی این شعر رو هم خوندیم دیگه این آقای متنبی تو یه که گفته اونم مشهور تام صحیح بود خب این شاعر این کارو کرد بعد اومدیم توی مقطوعش از شاعر دیگری خوندیم که در غزل گفت، یا غیراتن اوه بها و یا هوا یا غیرتن اوهب بها و یا هبن اغارو منعبیرهل فواهی اینم توی یه سبک گفت رجز تام مکتوب. اما ما گاهی اوقات میبینیم که شعرها اینطور نبوده بلکه اومدن یه بیتو مثل آقای متنبی گفتن یه بیتو مثل این شعر. یکی از این اسفادی کس. سه تا بیت اونجوری گفتن دوتا بیت دارید هر جور که دستش آمده بیان کرده بلجدی رو به ذکر اونی که شایسته است ذکر بکنیم اینه انه هناکت قصائد کسیرتن این اینکه اینجا ما قصاید زیادی داریم فی وحر رجز در وحر رجز و شعران این و است و حالا که شعران لمیه تغیید و به ضرب واحد یه نوع واحد نگفتند فیها در اون عبیات در اون قصاره نه و الفیت ابن مالک مثل الفیه ابن مالک. یه جا به صحیح گفته یه جا تام تامب گفته نه و ابن مالک و ارجوزت عبل عطاهیه و رجزنامه عبالتاهیه ذات الامثال که این رجزنامه او زربلمسلهای زیادی توشه صاحب زربلمسلهاست که به عنوان نصیحت اینها رو جمع کرد نه و قول مانند این الان دو دوتا بیت داره مثال میزنه بیت اول بیت دور بیت اولش رجز تام مقتوعه بیت اولش جل تام مفتوع بیت دومش رجز تام صحیح اج تام صحیح حالا رجز تام مفته یعنی چی؟ یعنی مستف ال مستف الان مستف الان مستف الان مستف الان مفوله اینطوری تام صح یعنی چی یعنی مستف الان مستف ال مستف ال الان بایکنیم ببینیم همین طوره. هس بچه، مم ما تب تغییرل اوتو، ما اکثرل قوت لمن یموت موتو. میگه بذار. نسیادانجا. هس بچه، کافی است مم ما تب تغییره، تب تغییره یعنی تقلب کافی است تو را از آنچه که طلب میکنی القوت یعنی قوت رو کرد قوت یعنی اون مقداری که شما میخورید و کفایت کار شما رو میده یعنی اون مقداری که برای تو کافیه میگه کافی است تو را از آنچه که طلب میکنی همون مقداری که میتونی مصرف کنی بقیهش میمونه خیلی هستان الان دیگه میبینی صبح تا شب میدوند این بر اون بر هر چی که هست جمع میکنه اما چقدر میتونه مصرف کنه همون مقدار شکم بیش از اون مقدار نمیتونه هر چقدر مصرف میکنه میبینه که مازاد موند میگه برای تو بسه از آنچه که طلب میکنی از این دنیا همون مقداری که مصرف میکنی توست قوت خود یعنی اون مقدار تو بدون اسراف بعد تازه میگه ما اکثر القوت لمن یموتو این ما اکثر مای تعجبی است مثل ما احسن زیدا که دوتا سیقه بود برا تعجب یکی ما احسن زیدا یکی احسن بهی چقدر زید زیباست ما اکثر القوت گفته چقدر تازه این قوت زیاده تعجب میکنیم قوت چقدر تازه زیاده برای کی؟ لمن یموت برای کسی که میمیره آقا قرار تو بمیری برای کسی که مرگ داره و مردن تو کارشه همین مقدار قوت هم از سرش زیاده خیلی زیاد ما اکثرال قوته لمن یموت پس اولش گفت چی؟ کف هر چی داری جمع میکنی و این وروران دخته میکنی بدون اون مقداری که قوته فقط برای تو کافیه بقیهش اضافه است بعد تازه گفت با واسنده تعجب میکنه همین قوتش هم برای کسی که قرار بمیره زیاده بعد میگه من تفعل اون شد. این ویت دو, دو من تفعل مرعوب مثل عقلی من تفعل مرعوب مثل عقله که می خونیم به عقل هی من تفع المرء به مثل عقل هی. ما انتفع یعنی سود نبود المرء هیچ انسانی به مثل عقل هی یعنی به شیعن مثل عقل هی. به چیزی مثل عقلش یعنی هیچ انسانی به چیزی مثل عقل خود سود نبود یعنی هیچی نمیتونه بیاد جای عقل آدم رو بگیره هیچ انسانی به چیزی به مانند عقل خود سود نباد راست میگه دیگه هیچ انسانی هیچ چیزی براش ارزشمندتر از عقلش نیست عقل نداشته باشه معادل با حیوانه هیچ کسا از انسانیت میره بیرون هیچ چیزی به اندازه عقل برای انسان سودمند نیست من تفعل به مثل عقلهی این به مثله یعنی به شیعن مثل عقلهی صفت جای موصوف نشد سود نبرد هیچ انسانی به چیزی به مانند عقل خود و خیر و زخر المرعه حسن و فعلهی یا ضرور و بهترین ذخیره انسان کار خوبش بهترین ذخیرش ممکنه ذخایر دیگه ای هم نشوش مال داشته و, داشت و اما بهترین ذخیره کار خوبه کار خوب است که تو اگر انبار کنی هم برای دیگران خوبه هم برای خودت خوبه هم در دنیا برات خوبه هم در آخرت و خیر و زخر المرع، حسن, و حسن و فعلهی این حسن و مبتدای معاخره خیر و زخر خبر مقدر چه مقدم بهترین ذخیره انسان کار خوبش خبر مقدم شده برای خاطر اینکه که برای شنیدن مبتدا پیدا بشه یعنی وقتی میگه بهترین کار خوب انسان همین تا نيروس ولی اگر از اول بگه حسن و فعل الانسان بهترین کار انسان مشوق میگه نیست و خیر زخر المرء حسن و فعله خب این رو ما فهمیدیم من تفعل و به مثل عقلی ما مایه نافیه بود حسب که کما ما قوتو حسب و خبر مقدمه القوتو مبتدای معخر اینجام خبر مقدم شده برای همون تشمیقه براش میگه میگه کافیست ترا از آن چه که به به دست بیاوری کافیست ترا از آن چه طلب میکنی این به ما متعلقه هست کسی کافیست ترا از آن چه که دنبال او هستی همه میگن کافیست چی میگه القوت قوتت یعنی قوتو که الفلام و از از ما اکثر القوت من یا موتو میگه قوتم برای کسی که قراره بمیره زیاد میخواد چکار من تفعل مرعود مثل عقله و خیر و زخر المرعه حسن و فعله این تیکه نگاه کنید این چهارتا تا که اومده اینها در واقع ضرب المثل هم به کار رفتند این ارجوزه اون ذات الامساده یعنی زربال مسئله ها رو در خودش داره هست و کم این ما تبتر ریحل قوتو بابا قوت برای تو کفایت میکنه همین قوت خودتو داری خدا رو شک بعد تازه بابا قوت هم تازه برای آدم که میمیره زیاد بعد گفتی هیچکی به اندازه عقل آدم نمیتونه هیچی به اندازه عقل آدم نمیتونه با آدم سود برسونه. بعد گفته بهترین ذخیره برای هر آدمی عبارت است از کار خوبش الان نگاه کنی اولی رو حسب و کمم حسب و کمم مفتعل مطلی هست. ما تفتقی مصطف درست شد ما تفتقی مصطف علا قوتو مفعولان فعل مشؤ بعد ما اکثرل ما اکثرل مستفعل قتل من مفتعل مطویعه است یموت فعول مقتوع مخبون است مقتوعش لازم مخبونش دوست حالا ممکنه شما به من بگید این از چه نوع میگم رجز تام به میگه شما تو رجز تام مقتو گفتید که مصطف علون مصطف علون مصطف علون مصطف علون مصطف علون, مصطف علون مفعولون شیشومی میشد مفعولون پس اینجا چرا ثومی هم مفعولون اومده؟ هلقوتون جوابش مشخصه دیگه بلدی میگیم اینجا بیت بیت مسرعه چون بیت بیت مسرعه عروز تامه ضرب شده شون بیت مسرعه عروض تابعه بگید ضرب شده ولی تو رجز تام مقتوب که با هم خوندیم یا قیرتن احبها و یا هبن اقار من عبیر هلفبواهی شما این رو نمیدیدید مسرع نبود لگه مصطفیه دوم لیکم و انتجهی من باردا و جنتن من لهب نفاهی که شما پس بنابراین اگر شما میبینید که هلقوتو مفعولن اومده این به خاطره بگید به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بیت مسرعه چون بیت مسرهه عروس تابه زرمه شد وله اگه بیت مسرع نبود ها اینجا میشد مستفعلن مستفعلن مستفعلن پس رجز تام مقتون حسب و ما حسب و کمم ما تبتری مصطف علون هلقوتو چون به مسرعه مفعولون ما اکثرال مصطف علون اوتل من مفتعلن. یموتو فعولون مقتوعه است. من تفعل مفتعلون مرعوب مس مفتعلون مطویه مطویه لعقل لهی لعقل لهی حتما با اشباه کنیم که بشه مفاعلن و نمیشه لعقله بخونیم غلط لعقلهی لهی مفاع ایذن از مخبونه بودنش تاثیری نداره انگار گفته مصطفی و خیر و زخ مفاعلن ریل مرعه حس ریل مرعه حس مصطف اران نفع الهی مفام این رجز تام سهی درسته که توش ما میبینیم که ذهاب خبن و تی و اینها داخل شده ولی تأثیری نده پس میبینیم یه بیتشو رجز تام مقتو گفته چون هم بوده مروزش شده مفعولون، ضربش شده فعولون، که مخبونه هم اومده همراه با مقتوعه. یه بیت دیگش صحیح اومده. دوباره ممکنه یه بیت دیگش صحیح باشه، یه بیت دیگش مقتوع باشه. از شکل به قول خودمون مخلوط استفاده کرده. هر جور که دستش می استفاده کرده. پس و جدی رو به ان این نهاناکه، قصائد کسیرتن فی بحر رجزه درست شد جدی رو به ذکر بعد انه هونه بشه انه هونه که قصاید کسیرتن فی بحر رجزه و شعراء و است، لم یه تغییدو به ذرن واحد نهوه الفیت ابن مالک همینطوره و نهوه الفیت ابن مالک و ارجوزت ابلعتاهیه ارجوزه به قصیدهی میگن که در بحر رجز باشه و رجز نامه آقای عبالتاهیه که این ارجوزت عبالتاهیه ذات الامسال پر از ظلم و مثل این دو بیتی که دید حالا بیایم سر آخریش رجز منحوک این رجز منحوک یعنی از دو تا مصطف علور یه بیت تشکیل شده مصطف علور مصطف علور می الان این سه تا بیت اینا که شما دارید می بینید سه تا بیت که زیر هم نوشته شده. دوباره سه تا بیت دیگه سه تا بیت دیگه جل منهوک و هو ی تعلفف و من تفعیلت مستف الان این جل منهوک دیگه یعنی خیلی لاغر شده از شیش تا مستف الان دو تاننده. و خواهیت علف من تفعیلت مستفعلان تتکرر رو مرتین دوبار تکرار میشه. و ذکر ذکره لعروزی یونه نوعین عروزیین دو نوع برای این ذکر کردن. نکتفی به ذکر مشهور من هما. ما اونی که مشهور هست و برای شما ذکر میکنم. دو تا ذکره ما مشهورش میگه و هوال من hook صحیح و اون هم من hook صحیحه یعنی علت قطع توش نیست خب اون یکیش ممکنه بشه من hook صحیح من hook مقتول یعنی خب من hook صحیحش بیشتر استفاده میشه مصطفل و مصطفل و مصطفل, و مصطفل و مصطفل دیگه علت قطع هم توش نیوردن که بشه مفعولون که صحیح و هوه ماکانت تفعیلت و زربهی که این زربش در واقع عروزم هست مصطفیلان دوم که بهش میگه زرب عروزم هست چون از دوتا مصطفیلان تشکیل شد و هوه ماکانت تفعیلت و زربهی مصطفیلان نه قول شاعر. هازل اسیلو کدهد هازل اسیلو کدهد و بالمراعا عجب علل بحاده و لكثر میگه هازل که حتما دیدید شما عسیل، یعنی غروب جمعش آصال غروب که بشه خورشید وقتی میره به افق یک رنگ طلایی از خودش یعنی اون درخشندگی ظهر را نداره. آفتاب لب بوم میشه. رنگش رنگ طلایی زرد میشه. میگه هاذا اصیل و کز ذهب. این غروب مثل تلاست این خورشید به هنگام غروب اینه تلا زرد این غروب فچ و تلاست خب درس تاس در چی و چشبه افتاده؟ فل اسفرار در زرد. خب یه قروبی رو داره میگه فرض کنید شما یه غربی است در یک دشتی شما هستید، رنگ زرد آفتاب و... اون دشت سبز تابیده غروب رنگ زرد اصر خورشید غروبگاهی بر روی این سبزه های دشتی که شما تصور کردی تابیده میگه ها زل اصیلا که حاضر مبتداست الاسیلت که بیانشه که از زهب خبرش این قروب مثل تلاست یسیلو و بلمرعا عجب یسیلو و بلمرعا یسیل یعنی روان شده جاری شده یسیلو و برمیگرده به حاضر اسیل این غروب تلایی سیلوار آمده است بالمرعا بر این چراگاه این چراگاه سبز سیلی از این غروب زرد غروب طلایی بر او روان شده یسیل و بالمرعا عجب این عجب وقف کرده باید بگه عجبا ولی لغت بنیتیی رو استفاده کرده که در حالت نصب هم اونها وقف به سکون میکنند مثل حالت رفع و جر. ما میگیم جا از زید مرر تو به زید وقتی به سکون میکنیم تو حالت رفع و جر ولی تو حالت نسبی میگیم رعی تو زید در تای میگن رعی و زید اون رو هم در حالت نسبی این هم از اون استفاده کرده یسیل و بلمرآ عجب یعنی عجبن یعنی با شگفتی شگفتانگیز آمده و بر روی این چراگاه سبز جاری شده یسیر و بلمر آمد الان ولکسب خوب خب این چراگاه بلندی داره بها کسب پستی داره بر بلندی ها و فراز و فرود های آن بلندی ها و پستی های او تاویده یه دشتی رو شما نگاه کنید یک جایی که چراغاه تباهایی داره سطح صافی داره وهاد و کسب این قروب خورشید غروب طلایی بر روی این مرغزار بر روی این چراگاه سیلوار جاری شده خوب داشته تصویر میده شما الان این رو خوندی میتونید نقاشی بکشی حزل اسیرلو که از بالمرعا عجب ل به بل کسب سه تا بیت ها هم به ساكن بای ساکن؟ شد؟ حالا نگاه کنید این اینجوری نوشته شده سه تا میگه حزل سی مست لو کز زحب مفاع اون مفاع الانشقال میتون مست الم مخبونه به شتهافت شده ها زلسی مست الان. لو کز ذهب ذحب یسی لوبل یسی لوبل مر عجب مرعا عجب، مصطفى علو ببینید اینجا تو بیت دوم اون زهاف خبر نیست اون اولی موالنون لوک از اینجا مرع عجب مصطفى دیگه اون زهاف خبر وجود نداره زهاف قبل خب دیگه اون توی مصطفح الان اولش توی بیت اول مصطفح الان ظالم هست توی بیت دوم یسیل و بل مفاولان مخبون هست زحاف تحصیل ندار علال وحا مفاولان مخبون هست ده ول کسب مفاولان حالا نگاه کنید چی میگه الملاحظو انزحاف الخبر قد دخل علا عبیاتی از ثلاثت زحاف خبر داخل شده بر عبیات سگانش درست شد؟ هو غیر لازم لازم هم نیست میتونست نیاد هیچ اشکالی هم نداشت اگر نمی آمد درست شد؟ هیچ اشکالی نداشت اگر نمی آمد الملاحظه اونی که ملازم کنیم انلزه هاف الخبن قد دخل علی عبیاتی از سلا سته خلاصه بحر رجزو میگه من برای بحر رجز یه مقداری برای شما مایه گذاشتن مطالبش رو با هم بحث کردیم که بهتر بتوانید به این بهره رجز رو داشته باشید وحد وهاد و کسب بلندی ها و دشتها پسی ها؟, پستی ها. هستی ها و بلندی ها به هاد و کسید الملاح هست انزهاف الخبن و دخل علا عبیاتی از سلاسه. شما میبینید که ذحاف خبن داخل شده بر زهاف خبن داخل شده بر عبیات سگانش شما این رو دارید میبینید خب ما در واقع مبحث خودمون رو نسوندیم به اهل رجز رو به انتها. الان من میخوام به اهل رجز رو برای شما جمع جورش بکنیم که شما دیگه کارتون تمام باشه خلاصه بحر رجز میگه هو بهرل. این است که یتعلف و من تفعیلت مصطفیلون تشکیل شده از تفعیل مصطفیلون مستفعلن ملات بحر رجز تتکر رفت تامه تتکر رفت تامه. منها در تام مز رجز تکرار میشه سه تمراتن تمرات مرتبه مستفعل علون مصطف علون مصطف علون خوندیم تو کلید شنفی عب هر بحر جازه مستفعل مستفعل مستفعل و مصطف علون مصطف در مجزوع چار مرتبه مستفعل علون مصطف علون و فل مشتور من دیگه مصطفح علون مصطفح علون مصطفح علون مصطفح. و صلاس سه تاش یه بیت مستقل مسترف و فل منهو که من در منهو کش که امروز نی دو مرتبه مستفقان مستفر. و تدخل علت القط علی تام علت بعد در تام داخل میشه و در مشتور هم داخل میشه. چون تام به صحیح داشتیم و تام به مقتو مشتور صحیح داشتیم و مشتور مقتو. دو تا بود درست شد مشتور صحیح داشتیم و مشتور مقتول تام صحیح داشتیم و تام مقتول مقتولش به جای مصطفعانو میشد مفعولان که گای او قادم زهاف قبل داخل میشد می به جای مفعولان فعولان و یدخلو زهاف الخبن مفایلان و تی مفتعیلان جمیع تفعیلاتی هشفن و عروزن و ضربن به همش داخل میشه ولو کانت تفعیلت و ضربهی معلولتن اگر حتی تفعیل زربش علت بهش داخل شده باشه یعنی به جای مفعولان شده باشه چی به جای مصطف شده باشه مفعولان باز زهاف خبر بهش داخل میشه میشه مفعولن قولان ولو کانت تفعیلت و ذر بهی یعنی علت قط بهش داخل شده باشه اگه علت قط هم داخل شده باشه مستفعلن شده باشه مفعولان باز ذهاب بهش داخل میشه ذهاب خبر میشه فعولان وف نادر و در خیلی خیلی نادر ما میبینیم یدخل و زهاف خبل زهاف خبل داخل میشه و این ذهاب خبل اجتماع زهاف خبن و زهاف تیه یعنی هم دومین حرف ساکن هم چهارمین حرف ساکن هست میشه و میشه متعلن و ف نادر یدخل زهاف الخبن بعض تفعیلاته تو بعضی از تفعیلاتش داخل میشه زهاف خبر که گفتیم زهاف قبیح هست. است ها زهاف قبیهیه که جمع بین دوتا تا زهاف یعنی ظهاف خبن و هاف خبن که ما داشتیم و ظحاف تی این مفائلن و مفتئلون هر دو رو جمع کرده شده متئلن دوم و چهارم رو حذف کرده و این ظهاف قبیهی بود و این زهاف قبیه گاهی اوقات داخل میشه همیشگی نیست این بهر تمام شد بهر رجز بهر نیجهی بود که ما روش وقت برای شما گذاشتیم و شما در واقع در رجز خیلی نکات رو میبینیم و خیلی از اشعار عربی بر وزن رجزه که انشالله تعالی مسلط باشید و بخواهید من تکرار زیاد کردم که یه مقدار کمک به حفظ شما بکنه استدلالی هم متوجه بشید خب، وقتی که تونستید مطلب رو بفهمید و خلاصه نویسی کردید و ما هم همین ابیات رو از شما میخواهیم و بیتهایی که حل نکردیم رو به شما نمیدیم پس خیالتون تخت باشه انشاء الله تعالی یه مقداری جذوهرو راست و ریستش کنید خلاصه بندیش کنید مطالبش رو ابیاتش رو یکی دوبار بخوادید حفظ کنید میبینید که اوقات حتی تو عروز من خودم هم که شاید سالیان سال نزدیک به سی سال باشه که داریم همین و شاید از سال هفته که دانشگاه خودمون ما گروه عربی رو تشکیل دادیم تا الان که 23 سال باشه هیچ احدی به جزبنده عروض درس نداده و توی این سالیان سال و حتی در دانشگاه های دیگر هم خیلی از این درس. چون درس نسبتا ویژه ای هستش من تدریس کردم با اون حال شما میبینید گاهی ممکنه از ذهن خود من هم به پره باید حفظ کرد و از خدا خواست که انسان موفق باشه حفظش کنه یاد بگیره شما که البته جوان هستید و میتوانید به بهترین شکلش یاد بگیرید نگران نباشید استرس نداشته باشید انشالله این بحر رجز رو هم خوب یاد میگیرید تا انشالله جلسه بعد شما رو به خدا میسپرند موفق و معید و منصور باشید خدا نگهدار شما